حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامة عن أبي ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث شيء خالد بس من باب التأدب ببعشي يعني يكز مسائل كمو مراد بوكني مشايخهم مون قجزات مهم وقت بحديث مي خونديم دروس دار كتابات ننبشت عن أبي ذر رضي الله عن لخو أزباب التأدب وأصحاب هرقوه نوم أصحاب ميات حتی বর্ষان بندگان دعایی در حق آنها داشته باشیم و خصوصا وقتی که یاد و نام رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه صلوات بگیم تلفظش بکنیم درود بفرستیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ان شاء الله به موقعش هم این حادیث خواهد اومد که وظیفه مؤمنه وقتی که نام رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنوه و درود بفرستیم. این از باب تذکر گفتم هم یادآوری به شما هم به شیخ که احادیس را میخونه نعم نبی ذره الله عن أبي ذرن رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف وصلي الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرست صلاتك وإلا فهي نافلة وحدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو أقسم في جيرانك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد باب يكثر ماء المراقي فيقسم في الجيرة فعن جواب السؤومين باب باب يكثر ماء المراقي أب قشت أب شو زياد ميكونة شخص توسيحة سوش فلا ينك بهم سيغانا بدأ أزونا أب قشت أقول كرا أب شو زياد بكنا كرا نقف قشت شو زياد بكنا قشت عزيزنا قشت كيرونا وی آب نه کمتر چیز در نظر گرفته شده حداقل آبشو بیشتر که حداقلشو بعضی از ما این زاویه رو گرفتن تو پرانتز گذاشتن گفتن که این بیان حداقل کاری که میتونه انسان در حق همسایه انجام بده حدیث 83 سبوم حدیث ابوذر غفوری رضی الله عنه قال اوسانی خلیلی صلی الله عليه وسلم خلیل محبوبمون همه هست رسول الله صلی الله عليه وسلم خلیل حبش متخلل شده در لابلای خونمون قلبمون جا گرفته، آمیخته شده با قلب ما حبش و محبتش و دوست داشتنش. این خله هست. محبوبیتش و دوست داشتنش در قلب ما قابل قیاس با محبت دیگران نیست. به خاطر همین رتبه بالایی داره، بالایی داره، بلکه بالاترین رتبه از محبت و اونم خلت رو داره. بختی که محبت با قلب آمیختی میشه و دیگه جدا درینی نیست این مقامه چیه مقام خلت خب ابوذر غفاری رضی الله عنه چی به پیامبر رسوله مقام رسول الله صلی الله و وسلم در دلش در قلبش عزیز بودن رسول الله صلی الله و وسلم در قلبش آیا این مقامه رو هر کسی در دلش داره نه هر چقدر پایبندتر و رهروتر باشی به رسول الله صلی الله علیه و وسلم پیرو باشی پایبندتر باشی رو بخونی از بابی که بفهمی که رسول صلی الله بهت چی گفته اون محبت آمیخته شده تر در قلبت شده و اون محبت به قلبت گرهش قوی تر شده یعنی این دلالتشا وقتی که شخص پایبند میشه به نمازاش، به اطاعتش به خوبیهاش حتی به اون لبخندش که مردم ازش محروم نشن و تبسمی که فی وجهه رفیق لک بها صدقه حداقل چیزا را انسان در نظر بگیره حالا اینجا که ما در حق حقوق همسایگان داریم میخونیم حداقل اون آب بغوشه تو بیشتر کن حداقل به همسایه اقل امور در شارع عن بیت توصیه میکنه چه موقع شخص حتی این چیزهای پایینم ازش دریغ نمی کنه وقتی که این محبت آمیخته بشه به قلبش گره بخوره به قلبش محبت رسول الله صلی الله علیه و به این مقام برسیم؟ چگونه این شرف رو پیدا بکنیم این مقام خلت بهش برسیم یعنی که واقعا بر ادعام و صدق بکنه یعنی فقط مجرد شعار نباشه چون خیلی ها سن شعار میدن. با چارت مولود خونی فکر میکنن که این اینها دارن محبت رسول الله رسول الله علیه اثبات میکنن. محبت رسول الله علیه وسلم به ادعانی سلم میاد چون بازم حادث بعدی خواهیم خورد محبت به نیست محبت به عمله. قل هذی سبیلی ادعو الله على بصیر انا و من اتبعنی. من و پیروان من پیروشه رهروشه. وقتی که راه رسول الله علیه گرفتی. نه اینکه شعار بدی. منم منم حساب نیست. ابلیس هم منم منم میکرد فرعانم منم منم میکرد، انا ربکم الاعلا، انا من. تو کی؟ تو وقتی ارزش داری اون کی از جهالتش میاد به معلومیتش وقتی که ره رو راه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشید. کی او را اسوه خودت قرار دادی؟ تو ره راه کی هستی که چی بشید؟ که کی باشی؟ وقتی که ره رو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شدی، بله اینجا هست که از دایره جهالت به معلومیت میادید. الان ارزش پیدا می‌کنی ارزشت به عملته چقدر تو پایبندی چقدر تو ره روش هستی ارزشت می‌گیره نه به ادعا و اینجا ابوذر غفاری رضی الله عنه وقتی که این حدیث را بهمون به بیان میکنن، از باب اینکه بنده و پایبندیش را هم بهمون به داره ثابت میکنه. در عمل ما این می‌ویم از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم میاد مثل مثلا چیزی که ام المؤمنین عایشه توصیه به همسایه‌می‌کنه میگه یا رسول از خود یکی شروع کنم اینقدر میش تافتند بسیع اعمال خیر و اعمال نیک انسان باید انجینن باشه مجبد ادعا نباشه رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن اعفوا لله چش رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن نماز در جماعت صف اول چش رسول الله صلی الله علیه و آله توصیه کردن به صف اول به اینکه انسان بشتابه به اول نماز اول وقتش چش غیبت نکنه چش دروغ نگه چش و الى آخر خب این یک مساله این کمال ایمان بود یک کمال داریم کمال مستحب که انسان باید عازش دریغ نکنه باید بشتاب به سوی اون کمال مستحق که گفتیم در درس قبلی ما میخوام به این درجه و رتبه برسیم ما من منهم سابق بالخيرات ما میخوام در مقام خیریت واقع بشیم ما میخوام به اون درجه براسیم که الله جل شانه او به جبرئیل ای جبرئیل من فلانی رو دوست دارم او رو دوست داشته باشه لا یزال العبد یتقرب الی بناوافل حته احبها الى درجتی سابق بالخيرات الى درجتی احسان همچنان بنده با خوبی و مستحبات به من نزدیک بشه تا اینکه او رو دوست داشته باشه و اگر الله او را دوست داشته باشه صدا میزنه جبرئیل من فلان رو دوست دارم او را دوست داشته باشه جبرئیل فرشتگان آسمان را صدا میزند. من فلانو رو دوست دارم دوست داشته باشه الله فلان رو دوست داره او را دوست داشته باشه سپس محبتش رو الله در قلب بندگان میگذاره دو تا حدیثه یک حدیث اونجاست نه لا اذا عبد يتقرب الي بها نوافل حتى احبه با اندها مشرام و, و, و خوبی ها و نیکیها و مستحبات و من نزیم شده که دوستش باشه. و حدیث دیگر اینکه که رسول و آله میفرما که الله میگوید جبرهی را صدا میزند وقتی که بندی را دوست داشته باشد و میگوید من فلانی را دوست دارم او را دوست داشته باش این حدیث دیگری ما باید تلاشمون بر این باشه باید بشه تا این سوی این که ما به این رتبه برسیم تا این که مستحق رفاقت رسول الله صلی الله علیه و در بهشت اعلی باشیم که احادیث ما بعد که می همش توصیه و سفارش به این که چگونه ما به این رتبه برسیم کمال مستحب و شخصم نمیتونه به این درجه برسه جز با علم بخاطر همین هیچ عملی در دنیا شریفتر از علم نیست و هیچ عملی شریفتر از خصوصا پرداختن و پردازش به قال الله و قال رسوله نیست هیچ عملی شما شریفتر از این عمل هیچ عملی ندارید و این اختیار انتخاب الهی کسی که توفیقش پیدا بکنه و کسی که محروم بشه حقیقتا و واقعیت محرومیت در همینه کسی که محروم بشه رسول الله صل الله عليه وسلم میفرمو من یورد الله به خیرن یفقه و فید دین کسی که الله خیریتش رو بخواد توفیق فقه و فهم در دین رو بهش میده فقه و فهم در دین رو توفیقش بهش میده من یورد الله, الله خیری داشته باشه بایده خب علا بنده از این خیر از تفقه در دین فهم دین محرومه از خوندن حادیث رسول الله صلی اللہ وسلم به اینکه به کمال مستحب برسل محرومه آیا الله خیریتشو خاصه آیا آن شخص دنبال این خیرخواهی بوده که الله این خیریت را بهش توفیق بده فلما زاغو ازاغ الله قلوبه درسته زیغ وقتی پیش میاد که خودش نخواهه چون خودش نخواسته و ارزش قائل نبوده محروم شده زاغو ازاغ الله زیغ از خودشون پیش اومده و این عقوبته میاد سلب توفیق فلما زاغو ازاغ الله قلوبم در ازای زیغ خودشون الله سلب توفیق ازشون میکنه و زیغ را بر اونها مینویسه و, و محروم میشن از فقه و فهم در دید پس انسانه که خودش برای خودش برق میزنه که در خیریت واقع بشه یا نشه و انسانه که اسباب وسائل برای رسیدن به توفیقات الهی باید همیشه مد نظرش باشه اگر گرگان دنیا زیاد باشن حالا از مال دنیا از همسر از فرزن از الله بخواهد که این توفیق را نصیبش بکنه مثلا شخصی میخواد در این جمع مجلس باشه توفیقش رو پیدا نمیکنه حداقلش حداقلش اگر قلبش با مجالس رسول الله یا با سخنانش میخواد مشرف بشه که بدون پیغمبرش و این خلت ها اثبات این خلت رو من دارم بیان میکنم نمیتونی گوش بدی توفیقش رو نمیتونی بیابی لاقلش در دعاهات این ادعا رو ثابت بکن بگو بار از, ته دلم، از تو میخواهم این توفیق رو به بدی. من بدید من الان معذورم چقدر بودن از اشخاص که با اون تهجدشون مشاغل دنیا را الله ازشون برداشت و توفیق اهل داده چقدر بودن حالا شما مثلا خصوصا کتاب امام ذهبی رو بخونید سیر الاحلام و بالا خصوصا اون تهجدشون و اون دعاهایی که برای خودشون نگه داشته بودن خصوصا برای علم که نوره و این رو بدونید الله جل جلاله بالقران القرآن فرمى قال وكذلك اوحينا اليك روحا من أمرنا اوحينا ضحى الهي روحه وكذلك اوحينا اليك روحا من أمرنا بحكي عليهم برتو محمد روح شرا قلت روح چون با وحي باين قران وسنته هموتك زنده ميشه علم با زنده ميشه در غير اين صورت ما بدون علم مرده اين يك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان نميدونسي نا كتاب چيه نهيمان ولكن جعلناه نورا قرآن و سنت نوره غیر از این نور تاریکیه غیر از این نور زندگانی نیست مردنه تو مرده ای اگر این روح را نداشته باشی و تو بینوری در تاریکی به سر میبری اگر این نور را نداشته باشی ما کنت تدری ملکتا ولی الیمان یعنی این ایمان به جز با این نور حاصل نمیشه نمیتونی به اون خیریت و توفیق الهی در خیریت واقع بشی؟ جز با این روح و جز با این نور و لكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء نور با این نور هدایت میشی به صراط مستقیم و الله توفیق میده که از پل صراط بر جهنم عبور بکنی و به الله برسی و کسی که محروم بشه از این نور که بر روی پل صراط هدایت بشه محروم دیگه محرومیتی بالاتر از این نه حقیقت محرومیت بر کسی که از این نور محروم بشه پس این مقام خلتی که ابو غفاری رضی الله عنه یاد میکنه این مقام با عمل حاصل میشه خصوصا شریف ترین عمل چی کسب علم شرعی با شنیدن سخنان رسول الله صلی الله علیه و که نور و روحه هم زندگانیه و هم روشنایی هم زندگانی هم روشنایی خب سه تا توصیه کردن سفارش کردن رسول الله صلی الله علیه و سلام بهم اولیش اسمع و اطیع ولو لعبد مجدع الاطراف از معسم عطاعت رسول الله صلی علیه وسلم بیعت می گرفتن از ساز مسلمان و خصوصا در اواخر مکه نه در ابتدای نبوتش. اونجایی که رسول الله صلی علیه وسلم قصه تشکیل حکومت رو داشتن بیعت می گیرن. بیعت گرفتن یک امر شرقیه، یک وظیفه و یک تکلیفه که برای خودش احکامی داره، آدابی داره. بیعت به کی باید داده بشه و کی هست که میتونه تونه بیعت بیگره حاکم شرقیه. فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بود که بیعت می گرفت ابوبکر عمر نمی گرفتند اجازه داشتن که بگیرن نه چرا اذا بيع الامام فابيع الاخر فاقتل الاخر اگر امامی رهبری بیعت داده شود دومی رو دو سرش بزنی یک امام دو تا امام نمیشه دو تا رهبر نمیشه خب الآن واقعیت أحزاب و طوائف که هستن این فرق و اون فرقه و این حزب و اون حزب حرف حزبی بر خودش بیعت می گیره حزب من ملاديه فرحون چنانچه ما در فلسطین میبینیم که به خون دیگه تشنهن و مسلمون هم هم مسلمانانا به جون دیگه افتادن و در خیلی از کشورها در ترکیه میبینید و در کشورهای دیگه احزاب مختلفی هستن هر کدوم برای خودشون بیعت میگن در صورتی که رهبری هم برای خودشون در اون دولت دارن حکم این بیعت ها چیه حالا میخواد طریقت باشه نمیخواد حزب باشه حکم بیعتا چیه باطل چرا چون بیعت برای خودش آداب و احکامی داره که شر مشخص کرده بیعت برای حاکم ولی امره برای رهبره نه برای شیخ طریقت و نه برای رهبر حزب ما دولت تو دولت نداریم یک دولتی باشه بعد با توی اون دولت, دولت دولت دیگه تشکیل بشه اسلام یک دینیه اسلام یک رهبر رو داره الا این که مسئله حدود متعارفی داشته باشه از اون حد و حدود که دولت ها دارن رهبر یک اقلیتی یک کشوری یک حد و مرزی برای خودشون یک کسی عنوان در اون محدوده اون اشخاص مکلفا که سمع اطاعت به اون رهبرشون داشته باشن میتونه متعدد باشه چنانچه در زمان تابعین هم بود حسین وقتی که اسپانیا فتح میشه در زمان بنی امیه بنی امیه در همون اسپانیا بیعت برای خودشون میگرفتن و بنی عباس برای خودشون این حد و حدود بود و علما هم این کار نمی کردن پس سمع اطاعت برای اون رهبری که متعارفه در اون منطقه در اون حوزه و حدودی که متعارف شده و و اقلیمی که رهبری برایش تعیین شده باید اون فرد مؤمن دست از بیعت نکشه و اگر دست از بیعتش بکشه فماته فمیتت میته جاهلیه، مرگش بر جاهلیت، باید بیعت داشته باشه اون شخص باید اون شخص مسلمان البته در اون ای که حاکم و رهبرش مسلمانه حالا یک کسی نیاد این حدیث و تطویق بوده بر امریکا مثلا میگه پس اونجا مثلا رئیس جمهور فلانیه آیا سمع اطاعت آمد داشته باشیم نه سمع و طاعت برای ولی امر مسلمانه اون ولی امر مسلمان برگردن ما حق بیعت رو داره خب الان ولی امری ما داریم واسه سمع اطاعت داشته باشیم یعنی بیش ازش و اطاعتش بکنیم هر چند که میگه رسول الله صلی الله و آله میفرماید ولو لعبد مجدع الاطراف دولت بس فرنجو یاد میکنه از اون اوصافی که شاید نزد ما مضمون باشه قبیح باشه زش باشه یک وصف برده بودن عبد عبد باشه ما عبید داشتیم بالاخره در طول اسلام که به حکومت رسیدن مثل در مصر حکومت عبیدیها ها داشتیم عبید بودن خودشونو به فاطمه رضی اللہ هم نسبت می دادن. دولت فاطمی ها می گفتن موان از زمادگان فاطمه دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم در صورتی که برده بودن اونها. خب آیا اگر به سلطه رسیدن اینها این بردگان ما باید آدم سنعت عادت داشته باشیم؟ رسول الله صلی چی میفرمایند؟ اسمع و اطع ولو لو اگر هر برده باشه اگر چیره شد بر اون حکومت انقلابی کردن چیره شدن بر یک حکومتی اصبر اینه که حکومت حاکمش قراشی باشه همونطور که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و فوت میکنن انصار میگن که اومدن راهبر رو تعیین کنن بعد او بک بلند میشه میاد میگه که صلی الله علیه و گفتن که رهبر باید قریشی باشه خب این مسلمه ولی اینکه اگر سلطه پیدا کردن غیر از قریشی ها وظیفه ما چیه؟ کمترین رو در نظر گرفت عبد نگفت انساری ها گفت عبد از لحاد و رتبه پایینترین شما هم باشن تو اگر هم قریشی باشیم وظیفت که از اون عبد سمت عاد بکنی، این عبدم هرچند که مجد به الاطراف ده دست پاش بریده شده باشه قطع شده باشه یعنی هم از لحاظ شرف و مقام نسبی ضعیف هم از لحاظ تن و جسم ولی سلطه داره چیره شده کسانی هستن که جان کفشن کسانی هستن که فرمون فرمانبردارشن سربازانی داره برای خودش ارتشی داره برای خودش وظیفه تو مؤمن اینه که دست از بیعت نکشی ازش التیاعت بکنی هر که گفتم ضعف در نسب داره و ضعف در چی داره ضعف در نسب داره و ضعف در هیئت و شکل و جسم داره این حدیث حدیث ابوذر ذر غفاری با بیش از ده وچ امام مسلم در کتاب صحیحش روایت میکنه و مفصل در کتاب اماره نووی شرح میده وقتی گفته میشه سمع و طاعت در مقابل ولی امر مسلمان یعنی چی خروج بر اون جایزه درسته؟ انقلاب برش جایزه همین برداشت میکنیم دست از طاعت بکشی و خروج بکنیم همین برداشت میشه تظاهرات بکنیم درسته؟ نه. سمع و طاعت یعنی فرمانبرداری، یعنی اطاعت. حاکم بهت اجازه نمیده که تظاهرات بکنی، حاکم به اجازه نمیده که انقلاب بکنی برش. اگر انقلاب بکنی یا زندانت میندازه یا تو رو میکشه یا الی آخر. سمع و طاعت یعنی فرمانبرداری، اطاعت. نه خروج. خروج تعارض داره با سمع و طاعت. خروج یعنی که تا اقا سمع نداری، تو نمیخوای و نمیخوای که این بر تو فرمان روا باشه، حاکمت باشه. دست از زتاعتش کشیدی به خاطر همینه که اتفاق اهل علم بر تحریم خروجه حتی بر فاسق. بله کسایی بودن از معتزله و متاثرین به اونها از اشعاره فتوا دادن کسانی بودن از معتزله چون معتزله فرقه گمراهی بودن که توسط واصل ابن شک گرفتن واصل ابن طالب علمی بود در جلسات حسن بسی شرکت میکرد بعد بقول اصلاحات امروزمون قابل هز نبود براش حادیث سمعطاعت چطور حاکم فاسق باشه بعد ما هم سمعطاعت داشته باشیم انقلاب نکنیم براش ما ظلپذیر باشیم یعنی نمیشه نباید انسان از حق خود دفاع بکنه به این بحانه که این حادیث قابل فهم نیست حادیث نمیتونه قانع کننده باشه براش از اون جماعات، جماعتی که اهل علم بودن، حسن بصری و دیگران از اون جماعت را اعتزال میکنه به خاطر همین بهشون میگن معتزله، اعتزال کرد و یک فرقه و گروهی را تشکیل داد اسم معتزله که رهبرشون واسلم بن عتا بود. این فرقه و گروه اولین بدعتی که وردن تجویز خروج دستکشی از سمع طاعت از حاکم. که ما به چه بهانی و کجا میتونیم دست از سمع طاعت بکشیم؟ اولین کاری که کردن گفتن احادیث زنی و دلاله هست ما احادیث رو قبول نداریم اینا همه گمانیه با اسناد به مورد رسید این صحابی اون تابعیه صحابی عادل نیست تابعین اشتباه میکنن و الی آخر زنی و دلاله هست ما فقط قرآن رو قبول داریم شدن قرآنی حدیث رو رد کردن بعد از اینکه احادیث رو رد کردن اومدن به چی به توجیه کردن کارشون که انسان نباید ظلطپذیر باشه انسان باید از حق خودش دفاع بکنه و اسلام اومده انسان به حکومت برسه و براش دلیل تراشیده از قرآن ان الحكم إلا لله و من يحكم بما انزل الله هم الكافرون دلیل برای خودشون وردن همونطور که در زمان عثمان رضی الله عنه برای خودشون دلیل وردن از قران ان الحكم إلا لله هر که شما سیاق این جملات که الله در قرآن اون رو نکرده بخونید سیاق این آیات اصلا وصف حاکمیتی که خوارج میگن نیست سیاق این آیات سیاق وصف حاکمیتی که خوارج میگن در تکفیر حکام اون سیاق اصلا سیاق بحث حکم انزل الله و غیر انزل الله نیست اما اون آیات رو به شما میخونم شما دقت بکنید در سیاق این آیات حسن در سوری یوسف که دوبار تکرار شده وقال يا بلیه یعقوب میگه به فرزندانش علیه السلام لا تدخل من باب واحد ودخل من ابواب متفرقه از یک در وارد نشید از درهای متعدیدی وارد بشید وقتی که میرید به مصر ما اوغنی عنکم من الله من شيء نمیتونم هم. اون چیزی که الله بخواد بینیازی شما را در اون برطرف بکنم الله فقط که بینیازه من کاره نیسته هرچی الله بخواد میشه این الحکم الا لله حکم فقط از آن الله الله فقط میتونه حکم بکنه عليه توكلت وعليه عليها المتوكلون بر او تباكل میکنم اعتماد میکنم و همه باید بر الله متباكل باشه هر متباكل معتمدی بر بأ الله باید بر اعتماد داشته باشه الان این جمله ان الحكم الا لله در این سیاق در این جملاتی که شما قندید بحث تقدیر کونی هست یا شرعی یعنی چی تقدیر کونی تقدیر شرعی نخودنید من این قضیه توحید رو خلاصه بهتون بگم برای فهم و درک همونطور قضیه ایمان رتبه هاش رو داشتیم اینجا قضیه توحید رو با درتبه هاش می‌دونیم اونجا اصل ایمان کمال واجب کمال مصحح اینجا اصل توحید توحید دو تا اصل داره دو تا پایه داره یک قسمتش برمیگرده به افعال الله یک قسمت برمیگرده به افعال ما بندگان توحید این دو تا قسمت افعال الله تقدیرات کونی الله حکم کونی الله حکم قدری الله اون چیزی که در لوح محفوظ نوشته شده ان تومن به قدر و شر اینه حکم کونی و قدری نسبت به اون رضایت داشته باشی و ایمان داشته باشی که الله از قبل گفته بود به قلم که هر چیزی که میشود بنویسه احکام کونی خورشید کجا باشه ماه کجا باشه من و تو چه شکلی داشته باشیم از چه پدر مادری باشیم کجا باشیم در چه دور زمانی اینا حکام چیه کونی این توحید علمیه توحید علمیه فعل الله در مقابل فعل الله باید تسلیم باشی لا یسأل عما یفعل و هم یسألوا تو در مقابل فعل الله مسئول نیستی باید بهش ایمان داشته باشی ان الحكم الا لله الان باید تطبیق بدی بر این دو تا قسمت یک قسمت از حک شد حکم قدری الله کن فیکون هر چیزی که الله بخواد میشه این توحید علمی یک قسمت دیگر داریم از توحید عملی حکم شرعی افعال بندگان الله میگه هر چی اسمش بزار. بزار این توحید ربوبیت این توحید اولویت بزار این توحید و تو این توحید قصد و طلب توحید علمی این توحید عملی این حکم کونی این حکم شرعی میخواد هر چی اسمش بزار لا مشرح حتى فالصلاه تعارضي بینشون نیست مهم تعریفشه یک تا قرار دادن الله در افعالش و رو یک تا قرار بدی الله فقط سميع همه در یک آن میشنبه و میبینه یک در افعالش هیچ کسی مثل الله نیست کماثلی شی وهو السميع البصير خالق یک تا فقط خودشه رزاق یک تا فقط خودشه در در همه افعالش یگانه است یکتاست تک منفرد قل هو الله احد یک توحید دیگر داریم توحید عملی توحید عملی یک تا قرار دادن الله در افعال ما خودمون نمازی که میخونیم فقط با الله الا لله الدين خالص و ما الا ان الله مخلصین یعبد کی عبادت بکنه فاعل کیه منو شما یعبد الله مخلصین له دین اخلاص داشته باشیم توحیده عبادات توحید قصد و طلب میخوای اسمش بذار توحید عمل در اون عملی که خالصانه برای الله انجام میدی در اون تشریعات که الله هست خواصه فقط از اون بردار باشی فقط پای بنده به شریعت الهی باشی این میشه توحید شرعی توحید عملی خب الان بیایم دوباره به این سیاق و این جملات بیایم به حرف یعقوب علیه السلام بعد خط قزوات بکنیم من بهتون دیکته نمی کنم شما فقط انواع توحید رو الان فهمیدید ای فرزندانم لا تدخلوا من باب موحدات یک در وارد نشید و ادخلوا من ابواب متفرقه از درهای متفرق و گناگونی وارد بشید ما اغني عنكم من الله من شيء نمیتونم شما رو از الله بی نیاز کنم هرچی الله خواسته میشود هر الله خواسته میشود ان الحكم الا لله حکم از آن الله هست مسفایلون للمصلين الذين مع صلاتهم ساهون به حمد رب داره نک یک طرف جمله رو بگیرید یک طرف رها بکنید نه رب داره به هم دیگه نمیتونم در مقابل مقدرات الهی استدعی بکنم و اون تقديرات رو عوض بکنم حکم از انا الله چینو حکمی حکم کونی یعنی اون چیزی که الله بخواد میشواد درسته ان الحكم الا لله يعني الله حاکمه یعنی اون چیزی که الله بخواد میشواد علیه توکلت بس بروعه اعتماد میکنم در اون تقدیرش درسته عليه توکلت توکل میکنم اعتماد میکنم نسبت اون مقدراتش الان اینجا بحثی از بنده هست حید عملی هست بحثی که الله حاکم شارعه هست و قبول داریم الله حاکم و شارعه ولی که اینجا این سیاق این جملات یعقوب در چی میگه در تکفیر یوسف یا تکفیر فرزندانش کی رو داره تکفیر میکنه مل الحكم لله بحث حاکمه الله شما نگاه بکنید شخصی که گمراهه شخصی که منهج اهل سنت رو نداره و آلوده هست به فکر تکفیر و منهج اهل سنت رو در استدلال نمیدونه و آغشته هست اون لباس ای ایمانیش با خون مسلمان ها در تکفیر کردن و خون روزی و فتوا به کفر و تکفیر دادن به منهج خوارج را گرفتن شما برید تفاسیرشون رو بخونید یکیشون سید قد در کتاب تفسیر فیضلا را باز بکنید برید این آیه را بخونید چه برداشتی میکنه از یک شخصی که جاهل نسبت به علوم شرعی عدیب بوده لغوی بوده حالا این بگیم شخص سواد دینی نداشته سواد لغت داشته لغبی بوده یک عالمی یا عالم نمایی بیاد این را بزرگ بکنه این و برادرش محمد خود این شخص را بیان بزرگش بکنن جلوه بدن سنگش را به سینه بزنن شهید بوده مظلوم بوده تو زندان به شهادت رسیده و بعد کتابش رو جلوه بدن خوصا این کتابی که پر از تکفیره تفسیری فیزلالش کافیه که اون ادبیات لغت را حتی در ظاهر قرآن مراعات نکرده شما در تفسیره. گفتم حرف من نپذیرید. چش من گوشتون بده بعدید بريد داره تفسير فيزلاب تفسير سوره انعام رو باز بكنيد الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور بريد بخونيد جاي بحث الله از آفرینش میکنه از آفرینش آسمون و زمین میاد میگه این دلالت داره بعد توحيد حاکمیت تفسير سری انعام ابتدا رو بريد باز بكنيد الله داره با حمد و ستایش سوره رو شروع میکنه از همون ابتدا شروع میکنه به تکفير كردن بريد بخونيد گفتم حرف منو نادیده بگیرید اینجا الان حرف صد به صحابه و اینا نکرده جو جوش نیست الان اینجا بحث الان حکم غیر ما انزل الله نه پله هست در تکفیر وقتی واقع شدی وقتی که بین فعل و فاعل فرق نذاشتی مثل حدیث قبلی لیس المؤمن نفی ایمان شده اول در تکفیر میفتی وقتی که در تکفیر افتادی این نصوص بعید رو نفهمیدی این آیات قرآن رو نفهمیدی برداشت اشتباه کردی حکمی که صادر میشه از شخصی که برداشتش اشتباهه چه حکمی خواهد بود حکمی باطل حکمی میده حکم خروج خونریزی درشه دستکشی از سبع که وظیفه شرعیه اینها به هم دیگه رب داره اینجا هست که شخص که آلوده و آغوشت به این فکره میاد این حدیثو رد میکنه میگه نه این به درد این زمانه نمیخوره هزار تا بهونه میت باشه نه این حدیث معلوله نه این احادیس تعارض داره با احادیس دیگر چطور رسول الله صلی علیه وسلم میگه که بهترین جهاد کلمت حق عند سلطان الجائر حق بگه حتی سلطانی که ظالمه؟ بله، نگف انقلاب کن، نگف بیا شورش کن بر علیه حاکمه، گف که کلمه حق را بگو حتی نز سلطان جائر و ظالم، کلمه تو حق عنده؟ عنده، نز سلطان جائر، سلطان ظالم، نگف شورش، نگف انقلاب، گفت بگو، بعدم اگر رسول اساسنم اینجا میگه بگو اون گفتن جاش مشخص میکنیم میگه بگو نزد سلطان نگفت بر سر منبر نگفت در تلفن نه در واتساب نگفت در مقاله و کتاب حرف تو بر رسول ات آقا تو دوچار ظلم ای سلطان این کارت ظلم همونطور که خیلی از صحابه جلو حجاج ایستادن و به شهادت رسیدن گفتم بهش این کلمه حقه اما اینکه بر سر تلفونی منبری باشه مردم را به شور خلاف شریعت این کار خوارجه زيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرميان إذا اردت النصيحه لبي سلطان فلا تبده علانيه نصيحتي براي سلطاني داري علنيش نكون در روايه يقول فخذ بيده دستش رو بيگير يگوشه ولا تبده علانيه علني تاكو ميگابل هاديث باي وجود جاله مشكينا در در صحيح مسلمه ومحل اتفاق نز اهل سنات باي وجود بالاخره راه رو راه كيان واصل اصل عطای معتزلی که احادیث رو بعنوان این, این احادیث و این متواتره و زنی و دلالت هست رد میکنه راهروار راهش هم همینطوره طعن در این احادیث وارد میکنن با این وجود که گفتیم اجماع اهل سنت بر صحت این احادیس این لغزش ها پیش میاد اونم در ساده ترین امور بدیهی دین یعنی ساده ترین چیز همین این الحكم لله صحابه چی فهمیدن؟ خواره چی فهمیدن؟ اولی که این شعار رو پرچم و بالا بردن در انقلاب و در شورش بر علیه عثمان ردیل عنه وقتی خوارجین چیلین کاری کرده علیه همون اللهی مایست شد الحکم لله بود علی بن نبی طلب گفت کلمت حق اریده بها باطل کلام حق کلام آ الله ولیکن مقصد و برداشتی اینها از این کلام چیه باطله خارجی خارجیه فکرش خارجیه نزیکش نشو آلوده میشی عبدالرحمن مولجا یاد داشته باش آخر عاقبتش چی نزیگ کتابشون نزدیک فکرشون و اشخاصی که مدعی راهشونن راهشون رو تشویق میکنن نزدیک نشد دیدی سنگش رو به سینه میزنن بدون گمراه برحذر باش چون صاحب بد رفیق بد الا میاد در حدیث بازم هم اشاره بهش خواهد شد صاحب بد رفیق بد تو رو آلوده میکنه اگر پیرهانت رو نسوزانه مثلا کسی که در آتش میدمه اگر پیرهانت رو نسوزانه بویت رو بد میکنه آلوده میکنه اسمعوا و اطیعوا ولول عبد مجدع الأطراف وإذا صنعت مراقة فأكثر ماءها ثم منذر أهل بيت من جيرانك أجر أبقشتي دروس كادي صنعت مراقة دروس كادي أبقشتي فأكثر ماءها آبشو زيادكم ثم منذر أهل بيت نقاكن أهل منزلي أز هم سيغانت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف بون هم سيغانت بمعروف بنيكي أزقون آب گوش بده نه اینکه آب گوشت خالی بذاری که بعد گوشتش توش نباشه آب اون گوشته رو بدی ولی گوشتش توش نباشه مثلا یه جایی دعوت بودی دوتا گوسفند دو آوردن سر زدن اولی که رسیدیم چند روز اونجا مهمون بودیم یک روز گوشت بهمون ندادند و در صنعت مرقه فأکفر ما راقا فاكثر ماها نوکری روایت روایت دیگه رو توضیح میده ما روایت بعدی رو با هم خوندیم چرا چون توضیح این سخنان در حدیث دیگر ابوذر میاره که رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمان یا ابا ذر يا ابو سعد اذا طبخت مرقه اگر آبگوشتی را درست کردی یکم آبشو زیاد کن و تعاهد جيرانك تعاهد اي تفقد يعني باش از حال همسایگانت برو نگاه کن همسایگانت شاید گوشتی خیلی وقتی نخوردن حالا مثلا این مسئله میدونه کی پیش میاد خیلی ها الان این دوره زمانه توان گوشخوردن ندارن بعد طرف میاد مثلا تو خونش گوشت رو میزنه بره سر میزنه و گوشت رو با دنبهش دود میپیچه در همسایی هم گفتم شاید خیلی وقت تمام مزه گوشت هم نچشیده باشن خب اینجا هست که ما شاید اون همسایه رو در حسرت بندازیم یا اون مزه تلخ فقرش سبب رنجشش بشه اون فقیر یعنی ما سبب رنجشش بشیم اونا دارن گوش میخورن یا شاید حسادت هم ببرزن آنو با اینها دارم ولی به فکر ما نیستند اونا شاید در غیبت بیوفتن یا در حسادت بیوفتن ما هم سبب این حسادت شدیم این غیبت شدیم و اگر هم این مرتکب این کار نشه اگر این کار منجر به اینم نشه که دل اون فقیر بمانه توی اون دوشته که سبب آزرد خاطر شدنش و رنجش شده باشه اونجا ما ظالم واقع شدیم نه مظلوم اینو انسان باید دقت درش بکنه اینو انسان باید درش دقت بکنه چون توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم. تو سير رسول الله صلی الله عليه وسلم دقت بکنه انسان سبب آزرد خاطر کردن کسی نشه خصوصا اگر شخصی در جایی به سر میبره که میدونه همسایگانشون دستشون به خصوصا به گوشت اینا نمیرسه الا کسی خونه اش بغل کبابیه شاید کم جربش کمتر باشه فکر میکنن دود اون کبابیه دوده رستورانه واسه اصلا باجوی حالا فقیرها باشه آب گوشت درست میکنه بو نداره ولی کبابت بو داره دود داره بایم وجود که اون فقیر نمیدونه که تو چی داری میخوری ها. ولی تویی که باید به فکر اون فقیر باشی گوشت یکه در منزلته آبگوشی درست کردی همسایگانت هم ازش بهره ببرن او اقسم فی که یا که تقسیمش کن. یعنی اون گوشت پختی تقسیمش کن بین همسایگانت خب پس این قسمت دوم حدیث قسمت سوم این محاسن اخلاق غایر ارشاد رسول الله جناچه قرطبی میگه از حقوق و وظایف انسان در مقابل همسایگانش که وجه شاهد این حدیث در مقابل این بابی که امام بخاری ازش برداشت میکنه وصل الصلاه لوقتها توصیه سوم سفارش سوم نماز را در وقتش بخوان ان الصلاه كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کتابا موقوتا نماز بر شما مؤمنین وقتی هست که مشخص شده، زمانش مشخصه فا وجدت الامام قد صلا اگر دیدی که امام نماز خونده فقط احرزت صلاتك. و الا فهی نافله اگر دیدی که امام نمازش خونده تو نمازت را ادا کردی نماز فرضت وگر نه نافله هست خب این جمله چطور من بفهمم خب باید وقتی که انسان دوشار مشکل میشه اشکال میشه در حدیثی باید حدیث را کناره هم تا، حدیث را درست بفهمه بریم بحثه مسلم همین حدیث از ذر غفاری رضی الله عنه میگه یا ذر انه سيكون بعدی امرا بعد از من امیرانی خواهن اومد. امرا حاکمان یومیتون الصلاه نماز را از وقتش به تاخیر میندازن می میراننش با تاخیرش از وقتش حالا چه وقت فجر چه وقت ظهر چه وقت عصر یا مغرب و نماز را شاید به تاخیر بندازن از وقتش جای حاکمان بعضی از فقها با همسان بعضی جاها نماز عصر دم غروب میخونن اون وقتی که رسول الله صلی الله علیه و نهی کرده از نماز خوندن یا نماز فجر را به تاخیر میندازن دم طلوع خورشید در صورتی که بعد از شروق باید خونده بشه وقتی که اشراق خورشید می میبینیم از محل طلوع خورشید شروق بزنه خورشید نورش بالا بیاد اون وقت وقتی هست که وقت صبح داخل شده از اون داده بشه نه وقتی که خورشید اونجا بالا لا میخواد بکنه کل آسمان زرد شده سفید شده خب این تاخیر نماز از وقتش خب وظیفه در مقابل این حکام و این فقه ها چیه؟ تو رسول الله صلی الله علیه و آله به ابوذر غفاری، بونهایی که نماز را می میرانن از وقت حقیقیش می گزارانن، فصلیها، قد روایت فصلی لوقتها، نماز را در وقتش بخون. نماز را در وقتش بخون. این قضیه هم در غیر از فرض پنجگانه هم شاید دروغ بدهش، مثلا در نماز عید. شخصی قائل به اختلاف مطالع نیست. قائل به رؤیت ماهه. یک جمه ببینن، اون رؤيت ماه نزش معتبره این حدیث در حق صدق نماز در اون وقتی که بخونه بخونه الله صلی الله علیه و آله در این حدیث نماز در وقتش فصلي وقتها ووقتك ميبيني. شربه فإن صليت لوقتها صليت لوقتها كانت لك نافلة والا كنت احرست صلاتك نماز در وقت خوندی بعد با جماعتم رسیدی اون با جماعت رسیدنت نافله هست یعنی دو بار نماز خوندی یه بار در وقتش خوندی و بار دیگر با جماعت خوندی دومیه برایت چیه؟ نافله هست حالا به همین حدیث شما بر بگذید و الصلاة لوقت افین وجدت الامام قد یعنی نماز رو بخون در وقتش اگر دیدی که امام نماز را خونده یعنی تو نماز را یا نرسیدی مثلا به با اون امام تو نمازت ادا شده و اگر رسیدی و الا فهی نافله یعنی فان وجدت الامامه قد صلى فقد احرج اگر تو نماز را خوندی سر وقتش و با, با جماعت نرسیدی اونها هم خوندن خودشون تو نماز را خوندی وگرنه یعنی اگر نماز خوندی تکی و بعد با جماعتم خوندی نماز دومی برات چی میشه و الا فهی نافله اون چیزی که این حدیث را واضح تر میکنه لفظ دیگه این حدیث هم هست در صحيح مسلم كم يفرميان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلت صلاة لوقتها ثم ذهب لحاجتك نمازه در وقت شبه سبس برو حاجتك انجام بده فإن اقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل اگر نماز برباشت تو در مسجد نمازه لن باونها بخل باون جماعات بخل چرا قف نماز لباون جماعات بخل چون نماز دومي خوندن باون جماعات چي نافلها و اگر نرسيت بكارت رفت چون قف اذهب رفتی به حاجتت. اون نمازه ازت فوت شد. نماز با جماعت ازت فوت شد. نافله ای را از دست دادی. فرض رت را تو خوندی فقط احرزته. ادا شده در وقت تکلیفش. اون وقتی که نماز بر تو مکلف شده در اون وقت اون نمازه ادا شده و تو بر اون وقتی که الله بر تو گذاشته بود تو پای بند بودی و محافظت داشتی. این حدیث به همین قد اکتفا میکنیم. صلی اللہ علی, و علی محمد.